بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و علی محمد و آله طاقرین اللهم صل على محمد و آله محمد تاسیه ما بقیت الله فی الاراضین اروحنا له الفدا خب بحثمون در عواست صفحه یازده بود به کتاب من آخرین چاپی که هست الامضاء عرض کردیم امضاء یعنی جعل حکم نه یعنی رضا شارع به سیرت الاغلا جعل حکم عرض کردیم این حکم یا حکم مماسله یا حکم مناسبه و عرض کردیم در اینجا بحث های مفصلی وجود داره برخی متقدر مطلقا ما نیاز به جعل حکم داریم بعضی معتقدن ما مطلقا نیاز به جعل حکم نداریم بلکه رضایت کفایت میکنه و برخی مثل مرحوم ناینی از عبارت هاشون در تقریرات دروسشون در کتاب فوائد الاصول به قلم کازمی این طوری برمی آید چون دو تا تقریر از ناینی حالا مشهوره یکی همین فواید و لسول که از کازمیه یکی از آقای خویی به تعبیر شما بخور، به نام عجبت و تقریرات اینا مشهورتر از بقیه هستن و نسبترم کاملترن خب در ایشون در عبارات ناینی نا اینطور برمیاد که ما در عبادات رضایت شارع رو کافی میدانیم در عبادات اما در معاملات امضااء و جعل می خواهیم با رضایت کارمون راه نمیگیره. کارمون راه نمیافته، کفایت نمیکنه. درد. حالا توضیح داده چرا اونجا؟ لذا از کردیم این دیگه از حوصله بحثی که مادرش در صدت بیارش هستیم چه و خارج باشه این نیازند اون بحسا های تره که باید در کتاب رسا ارائعد که مربوط به دروس خارجه م بشه فقط همینقدر درس کردیم در اینجا مرادش از این که هو جعل و شور مقدس. الحکم المماثل او المناسب منظورش اینه بعد در ادامه گفته که وليس المقصود و مجرد رواه یعنی رضا شارع بها مطلقا مطلقا یعنی اون نظری که میگفت رضایت کفایت میکند مطلقا في غیر المعاملات که نظر ناینیه نا خب تا اینجا خوندیم چرا اینطوره؟ چرا میگیم جل لازمه؟ جلسه سه گذشته از خارج بیان کردم امروز تطبیق بدیم ردشین. و ذالک لئن السیره العقلائیه مما يقع و في طریق استنباط الحكم الشرعی. فما تشو سیره العقلائیه چیزی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره و یستدل بها علی الحکم شرعی و به آن بر حکم شرعی در واقع استدلال میشه کدوم حکم شرعی حکم شرعی واقعی یا حکم شرعی ظاهری حکم واقعی حکم شرعی است که اماره برای ما قیام میکنه و اون رو به ما نشون میده حکم شرعی ظاهری حکمی است که اصول عملیه ما رو بدان راهنمون میشوند مش میگیم حکم چی آقا ظاهری حکم واقعی ببینید آقا حکم واقعی که میگیم نه یعنی این که واقعا هم این حکم در لوح محفوظ باشد یا نباشد بالاخره اماره مدعی واقع نمائیه. ولو که اماره به خطا برود پس حکم واقعی از راه قطع و از راه زنون معتبره به دست میآید. ظاهری از راه اصول عملیه اندشک بقول شما اندشک فی حکم الله الواقعی میریم سراغ حکم ظاهری حکم ظاهری مستفاد است و در واقع اصول عملی است و منفاده اصول عملی است. میفرماد و من الواضح ان مجرد رضا شارع لیس حکبا شرعی صرف مجرد صرف رضایت شارع مجرد رضایت شارع این حکم شرعی نیست حکم شرعی یه پله بعده بله رضایت شارع از مبادیه رضایت شارعه از چی آقا؟ مبادی. از مبادیه چون بعد از رضایت اراده وجود داره و بعد از اراده جعل محقق میشه پس هر وقت جعل حکم بود میتونیم کشف کنیم که در رتبه سابقه رضایت هم بوده اما صرف رضا ممکنه باشه ولی جعل حکم نباشه ضمن اینکه که ما ارز کردیم تصور رضایت در شاره با مشکل تصوری به مشکل فلسفی مواجهه توضیح دادیم جلسه گذاشته فما يظهر من بعض القوم من تفسير الامضاء بالرضا لعله من جهت ملاحظته للرضا بما هو مقدمه وطريق الى جعل الحكم المماثل او المناسب لا بما هو هو اگر هم در عبارت بعضی از بزرگان میبینید امزا رو تفسیر کردن به رضا یا نوع تعبیر مجازی به کار بردن بل عنایه به کار بردن نیست رضا مبدعه برای اون جهل عزیز این رضا رو در طریق جهل دیدن رضا رو مقدمه رسیدن به جهل حکم مماسل یا مناسب دیدن نه رزا رو رضا دیده باشن لا رضا به ما و رضا بل رضا به ما هوا مبدعون اراده و هوا بل اراده مبدعون لیل بفرمایید جعل فالرضا یکون فی طریق جعل الحکم و این در طریق جعل حکمه این مقدمه جعل ها به اعتبار این گفتن امزا همون رضاست پس تبیر درستشونی که بگیم امزا جعل است. اونای هم گفتن امزا رضاست تسامحی گفتن بلعنایه گفتن مجازی گفتن اشکال نداره نه احراز و مجرد رضا کافه فی بعض الموارد بله البته ما بعدن میخونید ما رضا در دو جا داریم یکی رضا در طریق استنبات یکی رضا در موضوع حکم شرعی که بحث بعدی تونه بحثمون برحبه زنید کتابتون رو صفحه 13 برید میگیم سیره اقلائیه گایی سیره اقلائی در طریق اثبات حکم شرعیه برید صفحه بر گایی سیره مرتبط با موضوع حکم شرعیه یه وقت استنبات حکم شرعی یه وقت موضوع حکم شرعی رو میخواد به دست ما بده توجه کردی؟ یعنی کشف میکنه برای ما موضوع رو حکم معلومه لیکن نمیدونیم شاره راضی به این موضوع هم هست یا راضی به این موضوع نیست اون وقت میدونیم می بله گاهی مجرد رضایت کافیه این مال کجاست جاییست که مربوطه به استماعات نیست مربوط به مثلا تشخیص موضوعه در موضوع حکم شرعی اگر یه چیزی عقص شده و ما باید کشف کنیم که شاره اینجا رو هم راضیه مثلا شاره اینجا رو هم چی آقا روزی مثلا در وقف این خیلی به وجود میاد موقوفه مثلا موالی عرفی مثال بزنیم فعلا تا بعد مولای شرعی مثلا واقف یک چیزی رو وقف کرده برای یک استفاده ای در یک حسینیه ای در یک مسجد کاربری عوض شد در طول زمان گفت من اینو وقف کردم به خدمت زوار الحسین به خدمت مثلا عزاداران حسینی به خدمت مثلا زاکر الحسین مثلا بعدن این در واقع کاربریش رو از دست داد این مسئله مثلا تغییراتی شد و دیگه مردم از این استفاده نکرد مثلا آفتاب لگر وقف کرد اگه آقا خدمت زوار امام حسین که میان اینجا با این آفتاب لگن ها مثلا دستاشون رو بشوری بعدن دیگه آفتاب لگر نیست دیگه سرویس بیداشتی گذاشتن دیگه میرن اونجا روشویی هست آب سرد آب گرم گرد ما بلاخره اینا دیگه این از کاروری افتاد. اینجا آیا اجازه داریم این آفتاب لگن رو برداریم ببریم مثلا بفروشیم خرج دو تا مثلا روشیی باش درست کنیم بذاریم اونجا یا نه؟ میتونیم یا نه؟ اگه گفتید آ ایشون افتابه لگنی که گذاشته موضوعیت داشته براش خب طبیعتا دیگه نمیتونید دستش بزنی باید همین آفتاب لگن رو بیاری به صورت نمادین و... یعنی خواسته همین همین کارو خواسته بشه. یه،, یه حساسیت رو همین داشته رو همین آفتابلگره داشته یه وقت نه دو نه، اون او زمان بهترین وسیله برای شستش روی دستهاشون آفتابلگر بود الان دستگاه روشویه تازه روشویی هم بهترینش روشویی چشمی هم باشه که دیگه دست به شیر نزنه بهداشتی تر توجه کردی؟ ای پله پله جلو بریم مثلا خواهز اون وقت که نه اون خواست خدمت به زبارد حسین بکنه لحظه تنظیف حالا دیگه این طور باشه یا اون طور باشه اینجا ما رضایتش رو کشف میکنیم میگه ما ایشون دنبال خدمت به زوار امام حسین بود اما اگه نفرمون نه ایشون دنبال این بود میخواست سنت در واقع آفتاب لگن رو حفظ بکنه مثلا فرض بوش مثلا یه غرینه خارجی داریم اینجا رضایت او کشف نمیشه برای اینکه اینو تبدیلش کنیم به رشویی مثلا سرامیکی چینی کشف نمیشه حالا این مثال مبالی عرفیه زدن در مورد شاره مقدس هم همی شاره دستور به یک کاری داده ما نمیدونیم رضا داد یا رضا نداد مثلا. حالا نمیدونم این مثالی که میزنیم دقیق هست یا نیست از باب تشبیه و تقریب زه. مثلا شاره مقدس ما میدانیم آمدن پیش رسول خدا چکایت کردن بعضیا ها گفتن آقا نماز جمعه ازدهام جمعیت میشه در مسجد و بعضی ها عرق کردن. و اریاه تو روایت اومده اریاه خبیسه تحت الابات بوی بد عرق اینها میاد زیر بقلشون میاد و اینا اش محزاز میاره برای ما عقمون میگیره حالمون بد میشه پیغمبر دستور داد که از این به بعد که میایید مستبه از قسل جمعه بکنید قسل جمعه مستبه خب. حالا آیا این دستور پیغمبر برای این بود؟ که فقط مثلا این اریاء خبیسه تحت الابات از بین بره ویسو این که در زمان ما این اریاء خبیسه بنا نداره و حتی اگه غسل جمعه هم نکنیم این ریه کریه رو ما نداریم تو روز قبلش یا بس کردیم تمام کردیمه یا بعد از ظهرش این کارو میکنیم مثلا کار واجبی هم نیست که بگیم یه طهارتی خواستن ازمون مثلا اون طهارت یه روح باطنی دارد و فلان نه یه غسل جمعه ای گفتن حالا اگر شما کشف کردید که رضایت شاره به اینه که فقط خواست یه نظافتی وجود داشته باشه میگید خودی که این حکم فی زمان نهازا مثلا منتفیه به این دلیل به این دلیل اما یک گفتیم دخلی این موضوعیت داشته برای شاره مثلا یا گفتید که مثلا این علت حکم نبود حکمت حکم بود و چیزهای شبیه این ارز کردم این مثال ممکنه درش مناقشه بکنید ولی از تقریب ما خواهییم رضایت آفتاب لگر هم مناقشه بکنیم. بخوام از با تقریب ذهن عرض بکنیم که گا ما اوقات رضایت اینجا دیگه نیاز به جل نداریم اینجا همون رضایت کش بشه فقط یا کافیه چون حکم جل شده. فقط میخوایم ببینیم آیا موضوع اگه عوض شد، راضیه به این موضوع جدیدم یا راض به موضوع جدید بفرماییم. نیست. اگر راشاره دنبال در واقع خشبویی مسلمانان بود و، تی به خاطر مسلمانان راحتی در واقع مش... مسلمانان بود خب الان با استهمام و با فلان و اینها حاصل شده پس دیگه نیازی به اون نداری اما اگه گفتید رضایت رضایتش این موضوعیتی داشته براش اون اصلا چیز بوده این دیگه نمیتونی دست بزنید. نم احراز و مجرد رضا کاف انفیب از الموارد مثل احراز رضا به تصرف الحاکم شرعی فی بعض الانوال المختص به شارع مثلا ما از خارج میدانیم که شارع میدونیم راضیه که حاکم شرع در بعضی از انوالی که اختصاص به شارع دارن دخالت بگنه بلکه هاذا غیر مسئله الاستنباط این مسئله غیر از بحث استنباطه این بحث تطبیق حکم بر مصادیق خارجیه بر موضوعات تشخیص موضوع این مربوط به مرحله استنباط نیست این از محل بحث ما فعلا خارجه ما فعلا در مورد سیرای و اوغلائیه به بحث جهل و اینها فی طریق الاستنباط داریم صحبت میکنیم هذا تمام الكلام فل الامضاء و اما الحجیه چهارمین اصطلاح ها درست میگم چهارمیه پنجمین اصطلاح از اصطلاحاتی که باید در واقع بخونیم اصطلاح حجیت مرادنا بالحجيه صحه الاحتجاج فاذا اشارنا إلى سيره اغلايه اگر ما به یک سيره اغلايي اشاره کردیم، که اين سيره این چنين صفت دارد ردئي از آن صورت نگرفته است إلى سيره اغلايه غير مردوع رد نشده غير مردوعن انها و قل لا حجتون نعني أن هذه السيرة يسح الاحتجاج بها من ناحيه الشارع او المكلف على الامضاء أي جعل الشارع الحكم المماثل او المناسب لها او على صحه ما بنا عليه الاغلا بلا حاجة الى الامضاء حججيه حججت يك امر دو طرفه یعنی صحت احتجاج حجیت یعنی صحت احتجاج. مکلف بتونه به خدا احتجاج بکنه خدا هم بتونه به مکلف احتجاج اصلا وقتی بگیم ظاهر قرآن حجته یعنی چه؟ یعنی خدا فردا به ظاهر قرآنش احتجاج میکنه میگه چرا فلان کار نکردی؟ میگه من نمیدونستم میگه مگه قرآن رو من نازل نکردم مگه ظاهر نبود در این؟ مگه نگفتم المؤمنون اخبتون فاصلحو بین مگه نظهور داره در وجوب اصلاح ذات البین چرا تو اصلاح ذات البین نکردی؟ توجه کردی؟ مگه نگفتم در واقع کتب علیکم و صیام کما کتب علاللوین من قبلكم چرا روزه نگرفتی؟ من به شما گفتم خب. احتجاج میکنه احتجاج برعکس هم میشه مثلا ما میگیم که پروردگارا ما احساس نمی کردیم باید روزه رو مثلا تا صبح بگیریم دم غروب که شد افطار کردیم میگه چرا شما افطار؟ میگیم چون فرمود که من الخیتل ابو یا غیل الخیتل اسود مثلا فرض کن. ما به این دلیل یا به دلیل روایاتی که رسول تو گفت وسیع رسول تو گفت امام معصوم گفت به ما گفت مثلا من طلوع الفج الا غروب شمس مثلا ما به این دلیل لذا شب و دیگه راحت بودیم یا به دلیل آیاتی که فرمود در شب بخورید یا شامید خب پس برابریم پس هم ما میتونیم احتجاج کنیم هم او احتجاج میکنه بر علیه ما توجه کردیم ببین میگیم حجیت یه چیزی حجیت دارد یعنی حالا چه سیره ای حجیت دارد فرام ما اگر به یه سیره اوغلایی اشاره میکنیم یه سیره ای که ردعی از آن صورت رد یعنی من یعنی کنار نهادن یعنی نه نه معنی اصطلاحیش در اینجاست که وارد معانی لغوییش نشده الحجت لیست به چه معناس حجت یعنی برهان حجت یعنی خصم افهام خصم اسکات خصم اینا دیگه وارد لغوییش نشه لغویش دوست دارید الحجت و البرهان منطقو ببینید تازه نه هر حجتی هم مثلا وارد حجت زواهر هم تا مثال نذره من مثال زدم رفته سر حجیت سیره اوغلائیه یعنی منظورش حجیت خودمونه میفرمائند اگر ما به یک سیره اوغلایی که رثیی از آن صورت نگرفته اشاره کردیم و گفتیم این حجت است مرادمون چیه؟ نعمی مرادمون اینه که این سیره می شود بدان احتجاج کرد هم از ناحیه شارع بر علیه مکلف هم از ناحیه مکلف در مقابل شارع دو طرف میتونن به این چیکار کنن آقا؟ احتجاج کنن دو طرف میتونن خدا یه دستوری داده ولی فلان ریزکاریشو نگفته بعد ما میگیم تو نگفتی؟ بگی من نگفتم من به سیره اقلائی اعتماد کردم خب اینه سیره اقلائیم بود من به سیره اقلائیم تعویلم تعویل با این تعویلا علا از سیرت من دیگه حدود و سغورشو برای شما بیان نکردم تاشکری؟ پس او احتجاج میکنه به سیره ما میتونیم احتجاش کنیم به سیره بگیم پروردگار را ما روشمون دیدنمون سیرمون دعبمون این بود این کارو رو میکردیم شما هم دست 260 سال امامان منصول داشت کردیم. و در واقع قبل از اون هم 250 سال امامان منصول 20 سال هم 23 سال هم پیانبر شما یه قران کامل هم شما از این سیره ما رد عمر این شما نکردی. لذا ما احساس کردیم کارمون درسته که داریم میریم جلو. ما داشتیم زندگیمونو میکردیم دین شما اومد. شما نگفتی. نه در و چند سال امامان گفتن، نه پیغمبر گفت، نه در قران بود. ما با همین دعوه‌مون رفتیم جلو. اینجا احتجاج ماست در مقابل پروردگار. خب چرا قران کارو داشتید می‌کردید شما تو دنیا؟ میگی ما دونستیم نباید این کارو بکنیم؟ من می‌خوام من ناحیت اول ال متکلفو خوب براتون تبیین کنم ما هم اون برنامه اعتراض می‌کنه اما بر او اعتراض ال امضا ای جعل شاره الحكم المماسل و مناسبلا ما میگیم ما فکر کردیم پس تو هم با همین راضی هستی تو هم به همین جعل همین خودت برای ما قرار دادی جعل حکم مماسل کردی مناسب کردی او على صحت ما بنا علیه الاغلا حاجت امضا یا اینکه ما گمانمون این بود که این کاری که اوقلا دارن میکنن درسته و دیگه نیاز حتی به امضا هم نداره. حالا در آینده میبینیم که چه سیره‌هایی واقعا آره همه نیاز نیازمند امضا هستن برای حجیتشون یا نه. بعضی از سیره ها ممکنه برای حجیتشون نیازمند امضا نباشن. اینو ان شاء جلسات دیگه بیشتر بخوانید. رسیدیم دوستان اول الفصل الاول اقسام السير الاقلائيه و مناط و حجیتها چون امروز قاغبینتون زیادن بعمل مقدار اكتفاق بكوني بصل الله على محمد بقاله الطاهرين